تاخیر در بازگشت شب خونکی بود ساعتی از زمانی که قرار بود نیما به تیم باز گردد گذشته بود و هنوز از او خبری نبود نیما بعد از ظهر برای اجرای قراری رفته بود باید حداکثر تا هشت شب باز میگشت با ساعت هشت و نیم شده بود به طور معمول نیما زودتر از موعدی که گفته بود به تیم باز میگشت این تأخیر نگران کننده بود در اتاق کار به انتظار او بودی. علی نزدیک محووته وسایل دو سفر ایستاده و به نقطه خیره مانده بود. من وسایل دو سفر را که شامل دو شناسنامه یک گواهینامه جلی سه نوشته از بخشنامه های درون سازمانی میشد، شد در کیفی داده شیشه کوکتل را کنارش گذاشته بودم تا در لحظه خطر با زمین زدن کوکتل آنها را با آتش کشیده و نابود کنم. تا این مدارک به دست دشمن نیفتد خوشبختانه حجم سری سریمان کم بود در تیمی که با رفیق سیمین بودم برخی کتاب ها، بخشنامه حتی قرارهایی که نباید به دست دشمن میافتاد، در دو سفر محافظت میشدند سیمین میگفت به قیمت مرگ خودمونم که شده نباید بذاریم اطلاعات سری دست من رای بیفته اول وسایل سری رو بسوزون بعد فرار کن. در نیم ساعتی که نیما تاخیر کرده بود، دوبار از خانه خارج شده و اطراف را کنترل کرده بودم. اما چیز غیرعادی ندیدم. سفره شام وسط اتاق پهن بود و کتری چای سر بخاری میجوشید. منتظر بودیم تا با هم شام بخوریم و برنامه روز بعد را بنویسیم. علی راه می رفت می نشست به ساعتش نگاه می کرد من نشسته بودم و کتابی را ورق می زدم اما نمی توانستم ذهنم را تمرکز دهم تمام حواسم پیش نیما بود چی شده؟ الان کجاست؟ رفیقی که از خانه بیرون می رفت و دستگیر می شد طبق قرار می بایست تا یک ساعت پس از زمان تعیین شده شکنجه را تحمل کند و نشانی خانه را به ماموران نگوید رفیق دستگیر شده میدانست که رفقای او تا آن زمان در خانه خواهند بود آنها از یک طرف در انتظار بازگشت احتمالی او هستند و از طرف دیگر در حال جمع و جور کردن وسایل ضروری نمیدانم چرا فکر میکردم اتفاقی نیفتاده و نیما سالم باز میگردد آخرین باری که شاهد برنگشتن رفیقی بودم اسفنده سال پنجاه و پنج بود وقتی رفیق سیمین از خانه خارج می شد همه میدانستیم دانستیم که امکان بازگشته و اندک است میرفت رفت سند ماشینی را که خریده بود بگیرد زمان مامله فروشنده گفته بود که سند همراهش نیست و تنها کپی آن را به رفیق سیمین داده بود و از او خواسته بود که بعداً برای گرفتن اصل سند مراجعه کند در این فاصله رفیقی که سویچ آن ماشین در جیبش بود ضربه خورد. ماشین سالم بود و در دست رفقا اما حد زده میشد که مشخصات ماشین برای ساواک لو رفته باشد. فکر می کردم، یک ماشین پیکان قرازه چه ارزشی دارد که سیمین برای سنده خطر می کند. اما او می با وضع بد مالی سازمان اون ماشین برای اون حیاتیه صدایی در درونم می گفت سیمین از این قرار بر نمی گردن. سیمین رفت و شب به تیم باز نگشت باید از خانه می رفتیم. دو ساعت بعد به محل قرار استراری با رفیق رفتم شاید بیاید اما نیامد دیر وقت شب بود دو رفیق پسر تیم اباس و تهماس به خانه‌های آشنایی که داشتند رفتن. من و پوران که هیچ امکانی در اختیارمان نبود، به چند تن از فامیل‌ها مراجعه کردیم. از ترس ما را نپذیرفتند. یکی از فامیل‌های من وقتی در آن دیر وقت شب در خانه خود را به رویم باز کرد، با تعجب و وحشت نگاهم کرد. گفتم که می‌خواهم شب را در آنجا سر کنم. قبول کرد که مرا بپذیرد، اما رفیقم را نه من هم ترجیح دادم تا با پوران بمانم در خیابان سرگردان بودیم سوز سرمای اسفند از پشت چادر به تنمان فرو میرفت دستهایم یخ کرده و پاهایم بیحث شده بودند در خیابان پرنده پر نمیزد آخرین امید ما نیز که یکی از آشنایان پوران بود بر باد رفت و ما را نپذیرفت زمان میگذشت و ما هنوز جایی را پیدا نکرده بودیم. ساواک می‌دانست که بعد از هر ضربه چریک ها, خانه ها را خالی می و در خیابان سرگردان هستند. چریک سرگردان تومه خوبی برای گشتی های ساواک است. از کوچه های فرعی می رفتیم. سعی می‌کردیم تا در میدان ها و خیابان های اصلی دیده نشویم. بالاخره پوران گفت می پیش یکی از مادرها. بعد از عوض کردن دو تاکسی و پیچیدن در چند کوچه به خانه رسیدیم. پوران زنگ در آهنی بزرگی را زد. زنی با موهایی سپید که از زیر روسری بیرون زده بود در را آرام باز کرد. از دیدن ما چشمهایش گرد شد. بدون گفتن کلمه به سرعت ما را به درون خانه کشید. پوران بیخ گوشم زمزمه کرد. مادر سلاحی مادر زنی بود زریف و نحیف با صورتی کوچک، چشمانی جدی و مسمم و پشتی خمیده ما را از حیات گذراند و به اتاقی در عقب ساختمان برد پوران در گوش مادر گفت مادر، ای نداشتیم، باید اینجا می اومدیم مادر را حس زمزمه کرد الهی قربونتون برم بعد همسر سر و روی مان را چند بار بوسی اشک چشماش را با گوشه های روسریش پاک کرد و به سرعت قزای آورد صدایی از درون ساختمان پرسید مامان کی بود هیچ کس ما همسایه است مادر توضیح داد که دخترش زایمان داشته و در این روزها رفت آمد به خانه زیاد است بعد هم اطمینان داد که خودش موازه به همه چیز خواهد بود بهتر زودتر بخوابید صوب زود قبل از اینکه کسی متوجه شه برید ما شب را بین خودمان تقسیم کرده و بیدار ماندیم اما صبح متوجه شدم که مادر تمام شب رو به در حیات بیدار نشسته است صبح وقت رفتن دو کیسه نایلونی به دستمان داد چیزی نیست یه لغم شامل لاینون گذاشتم با دوتا ژاکت آخه سرد ما در دمه در حیات ما را بوسید و در آخر هم همانطور که چشمهایش را پاک میکرد گفت به خدا میسپرم تا مدتها چهرش از جلوی چشمم دور نمیشد به این فکر میکردم که چه کشیده وقتی خبر مرگ پسرانش کازم و جواد را به او دادند شاید تمام موهایش در لحظه شنیدن خبر این چنین سپید و پشتش خمیده گشته است دلم برای مادرها میسوخت، بچه ها با تصمیم و اراده خود به دنبال آرزوهایشان پر میکشیدند و قهرمان می شدند. مادرها سوخته در غم دوری فرزندان خود یا بر مزارشان عشق می ریختند. یا در کنار زندان‌ها انتظار می‌کشیدند کدام یک قهرمان واقعی هستند صبح روز بعد پوران قرار دیگری را اجرا کرد به امید آنکه شاید سیمین سلامت مانده باشد اما او باز هم نیامد دیگر رفیق سیمین را ندیدم ما دیگر به با آن خانه باز نگشتیم تیم از هم پاشید و هر کدام به سویی پرتاب شدی. نفس عمیقی کشیدم. خاطره باز نگشتن رفیق سیمین منقلبم کرده بود. حس می کردم هوای اتاق کم شده است. پاهای جم شدم انگار خواب رفته بودند. جابجا شدم. از ذهنم گذشت. اگر نیما نیاید. امشب کجا باید برویم؟ در تهران بالاخره می شد آشنایی، دوستی یا فامیلی پیدا کرد. اما در اصفهان کسی را نمی‌شناختم. اگر نیما نمی‌آمد، جایی نداشتم تا شب را به صبح برسانم. چریک‌ها معمولاً برای این روزها اتاقی ذخیره، اتاق تکی داشتند. نیما اتاقی داشت که در این مواقع از آن استفاده میکرد. در برنامه تیم بود که من و علی هم اتاقی بگیریم، اما به دلایل مختلف این تصمیم عقب افتاده بود و حالا میدیدم. عجب حماقتی کرده بودیم. امشب تنها راهی که داشتیم سفر کردن به شهری دیگر بود. بعد از ضربه حمیدش رفت در تیر پنجاه و پنج و از به این رفتن تمام امکانات و خانه های تیمی من هم جایی نداشتم تا شبها را به صبح برسانم. یک هفته تمام کارم این بود که با اتوبوس از تهران به شهرهای مانند مشهد، تبریز، اصفهان و غیره سفر کنم و روز بعد برای اجرای قرار به تهران بازگردم. شب را در راه گذراندم و روز را در شهر پرسه میزدم. شب بعد دوباره راهی تهران می‌شدم. یک بار وقتی در تهران به ایستگاه اتوبوسهای مسافربری رسیدم، فقط اتوبوسی برای بروجرت باقی مانده بود. بلیط خرید سوار شدم. در راه فهمیدم که اتوبوس ساعت چهار و صبح به بوجرد میرسد. از خودم پرسیدم این چند ساعت باقی مانده تا صبح را در شهری غریب چگونه سر کنم در جاده نگاه هم به چراغ های روشن اطراف جاده دوخته می شد. هر نوری خانه گرمی بود که در آن کسانی بی و نگرانی هایی که من داشتم بر تخت و تشک های خود به خواب رفته بودند از فکرم گذشت کاش من هم جایی داشتم آرزو می‌کردم اتوبوس خراب شده یا اتفاقی بیفتد و با چند ساعت تاخیر به برو برسیم اما راننده با سرعت میراند حتی ده دقیقه زودتر به مقصد رسید هوا تاریک بود و همه جا بسته مسافران از اتوبوس پیاده شدند و به خانه های خود رفتند تابستان بود اما سردم شده بود هوا سرد بود یا بدنم آمادگی پذیرش این همه فشار را نداشت وای اگر مریض شوم تنها در تاریکی شب و در شهری ناشناس هیچ وقت خود را تا این حد بیپناه ندیده بودم سمتی را انتخاب کردم و راه افتادم نمی بایست کسی متوجه میشد شد که من زن تنهای چادری جایی را ندارم وانمود کردم که چون دیگران به سوی خانه خود میروم و کسانی منتظرم هستند نمیدانم آن شب چند کیلومتر راه رفتم تا هوا روشن شد شب سختی بود دوست ندارم آن را به یاد آورم حالا دیگر علی با سرعت بیشتری در اتاق قدم می زد همچنان نشسته بودم انگار میخواستم نیرویم را ذخیره کنم با هم حرف نمیزدیم. در ذهنم مرتب این سوال تکرار میشد اگر نیم ها اما آخر چرا نیاید مگر چه اتفاقی افتاده؟ شاید تصادف کرده، مثلا با موتور به آبری پیاده زده یا کسی جلوی موتورش پیچیده شاید زخمی شده یا به بیمارستان رفته باشد. اگر کسی اسلحه او را دیده باشد؟ یا بر سر تصادف اصله به گوشهی پرتاب و خودش بیهوش شده باشد؟ یاد رزا رفیقم افتادم که با موتور با پیرزنی تصادف کرده بود. بهمن سال پنجاه و چهار بود. رزا تازه مخفی شده بود و وقت تصادف مسلح نبود. چریک بودنش لو نرفته بود. اما پیرزن رضایت نمیداد و او را در کلانتری نگه داشته بودن. رفقا که نمیدانستند چه بلایی بر سر رضا آمده خانه را ترک کرده بودند. آن زمان علنی بودم و از مخفی بودن رضا خبر داشتم. از ظهر چیزی نگذشته بود که او به محل کارم تلفن کرد گفت که از کلانتری زنگ می زند. رنگم پرید با لکنت تکرار کردم از کلانتری با سرعت داستان را شهر داد. چیزی نشده فقط بیا یه کاری کن تا آزادم کنن پولم بیار تا از پیرزنه رضایت بگیری آن زمان صبحها منشی شرکتی بودم و بعد از دانشگاه میرفتم به رئیسم گفتم اتفاقی برای برادرم افتاده و باید بروم به خانه رفتم پالتوی شیکی پوشیدم با بی اموی لیموی پدرم که تازه خریده بود به کلانتری مهراباد جنوبی رفتم و با جست زنی پولدار و بالا شهری جلوی در توقف کردم. از سلامی که پاسبان دمه در کرد متوجه شدم که تیپم کار خودش را کرده است. رئیس کلانتری با دهانی باز با احترام مرا به اتاق خودش برد و سفارش چای داد. گفتم که پسر باغبانمان تصادف کرده آمدم تا زمانتش را کنم. بعد هم سیصد تومان جلویش گذاشتم. با احترام گفت خانومی حرفا کدوم اصلا لازم به این کارا نیست؟ گفتم پول برای آن پیرزن است. پول را برداشت از اتاق خارج شد. شنیدم که پاسبان را صدا زد. صدای صحبتشان با پیرزن از راه دور می‌آمد. نمیدانم چقدر از پول را به او دادند. بعد هم ورقه آورد که امضا کردم. خیلی معذرت خواست. آخرش هم گفت اگر کاری داشتید بنده در خدمتم. وقتی با رضا از در کلانتری بیرون می آمدیم نگاهی تعیید آمیز به من انداخت و گفت با این تیپی که تو ساختی چریک هم گرفته بودم ول می‌کردن. اگر در تهران بودیم بیشتر میترسیدم. سازمان تهران را بعد از ضربات تیر پنجاه و پنج به دلیل جو پلیسی حاکم بر شهر تقریبا خالی کرده و به شهرستان ها رفته بود. در اسفهان تا کنون هیچ درگیری با پلیس رخ نداده بود. اگر اتفاقی هر چند کوچک هم برای یکی از ما می افتاد این شهر هم برای رفقای دیگر نامل می شد به گوش و کنار خانه نگاه کردم همه جانشانه از نیما بود وقتی اسره همان روز از در بیرون می رفت باور نمیکردم کردم که باز نگردد نمیخواستم خواستم فکر کند گرفتار ساواک شده است و ما باید خانه را ترک کنیم چند ماه زندگی در این خانه از بهترین روزهای زندگی هم بود یادم رفته بود در چه شرایطی زندگی می کنم و بهتر بگویم دلم میخواست فراموش کنم علی که حرکت تقبه ساعتش را دنبال می کرد اشاره کرد که باید برویم و با صدایی که از ته چاه در میآمد پرسید توی اصان آشنایی داری دلم میخواست میگفتم حالا یه رو بدیم صبر کنی دلم میخواست خواست خوش خیال حق با او بود، باید می رفتیم، هیچ کدام جایی در اسفحان نداشتیم. در همین لحظه صدای از کوچه آمد، یک نفر پشت در بود، علی نگاه کردم، پشت در اتاق سنگر گرفت، دستم را روی اسلحه گذاشته و به در خیره شدم. کلید در گفت چرخید، نیما بود، دلم میخواست میدویدم و در بغل می‌گرفتمش اما قبل از اینکه واکنشی نشان دهم با اشاره دست خواست که به اتاق بازگردم او همراه خود رفیقی آورده بود که نباید می‌دیدیم به اتاق برگشتم در را پشت سر بستم تا او بتواند رفیق چشم بسته را به اتاق مهمانخانه آن طرف حیات ببرد از قیافه خسته و خیس نیما معلوم بود که میدانست بر ما چه گذشته است او که در چنین شرایطی لحجه مشدیاش برمیگشت توضیح داد منونم قرار نبود کسی را با خودم بیارم. تصمیم رفقا بود. علیه سبانی بود. میخواست تمام آن چرا که در این یک ساعت تحمل کرده بود بیرون بریزد. به زمین و زمان بد و بیراه میگفت. نمیتوانست به حرفهای نیما گوش کند. خوشحال بودم و ساکت. به مگوی آنها را نمیشنیدم. توجه هم به چهره نیما بود به دور چشمهایش که از دود موتور سیاهتر شده بودند به موهای صافش که باد آنها را به هم ریخته بود عرق گردنش که هنوز جاری بود علی هنوز استدلال میکرد نیما دیگر جوابی نداد به حیاط رفت و صورتش را به آب شست بعد هم مثل هر شب ها را از پا درآورد و پاهایش را آب زد آن شب سر شام علی اشتها نداشت. من اما دو برابر همیشه اشتهاد ها داشتم و سهم او را هم خوردم. علی سفره را جمع کرد و بیرون رفت. به چی فکر میکنی؟ سوال نیما مرا را از افکارم بیرون کشید. لبخندی زدم و همانطور که سرم پایین بود جواب دادم. به لحجه تو. مکسی کرد و آرام پرسید. ترسیده بودی؟ سر بلند کرده. نگاه هم به صورت خستهش افتاد. چشم های شما مثل همیشه میخندید. از ذهنم گذشت. چقدر خوشحالم که برگشتی. سرم را به علامت تایید تکان دادم. اما نمیتوانستم بلند بگویم. چریک نباید میترسید. یا حداقل نباید از ترسش میگفت. اما من خیلی ترسیده بودم. شب که برای خواب تن را درون پتوی گرم رها کردم، خوشحال بودم که نیما سالم است که مجبور نبودم شب را بر سندلی های سرد و غریبهی اتوبوس سر کنم که آن اتفاق بعد باز هم عقب افتاد با به شور از راه رفته به خون به به